یکی از چیزایی که در روایات زیاد بهش اشاره شده باعث اعمال و آرزوی طولانی میشه اون اعمال و آرزوی بعد جم کردن پول، مال بعضی ها اشقی ملک حساب بانکی هست و کیف میکنه شبا مثلا چرتکی بندازه حساباش رو چک کنه حالا دیشب چک کردی؟ باز هم دوباره شب بعد نگاه میکنه یا املکیش رو یادم رفته بودیم برای اون قسمت های استداله سینددین اونجا برای خرید مثلا زمین که شاید منزلی ببریم اونجا اطلاق مشبر پیموندن کجا رفتیم با هم هم تو سر بالای تپا افتادیم گفتید چه میخواد چه میخواد اینجا پرته و دوره و با. یه بار بیای سر درستی که حال ندارید دوره برگردی. خب، یا آقای اونجا نشسته بود. بهش میخندیدنی پیرمردی بود. گفت من اومدم یه زمین رو بخرم. بعد که تحقیق کردن این زمین مال خودمه. گفتم میدم زمین خیلی خوبه و قلفتی با اینها گفتم نمیخوام اینه میخوام حالا که بنگا دنبال کرده دیگه این زمین من خودم چقدر زمین داری؟ کنون من دیویس تا چند تا قوال زمین دارم دیگه یادم رفته که کدوم مال منه گاهی اینجوری میشه یکی از مشکلاتی که انسان ها پیدا میکنن مال اندوزی مال رو رو مال میذاره و دنبال اضافه کردنشه قافل از اینکه اون آرزو و آمال بد شامل حالش میشه و کمترین حضرت فرمود کمترین زرری که آرزوی بد داره قروره قرره میشه دیگه از یاد خدا و پیانبر و عیمه علیه دور میشه از کار خیر بری میشه قفلت, قفلت است که در واقع از همه کارهای خوب این شخص رو باز می‌داره سرگرم به خودش میشه و دنیای خودش پس یکی از سببهای در واقع غرور و غرق شدن به دنیا اینی که آرزوی بلند داشته باشه انسان و یکی از زمینه های آرزوی بلند مال اندوزیه پولو و پول و اینها داشتن حالا یا به دست میاره یا به دست نمیاره این حالته خیلی حالته پرمکاپاتیه خب حالا بعضی ها شاید تنبه کنن دقت کنن ببینن خودشون هم مثل این نوع افراد هستن دنبلا زیاد و زیاد کردن مال و این هستن حالا میخواد درمان کنه باید چیکار کنه یکی از درمان های مهمیش توسول به خداست همین کاری که امام سجا سلامان علی داره به ما یاد میده اللهم مععود رو بکر انمود دفی آمال خدای به قدرت تو پناه میبرم از این که آرزوهای دراز مده نظر من باشه و من دنبال آرزه های دراز باشم این یکی از راهکارهاست. هاست دعا کردن از خدا طلب پرار از آرزو آمال و دورنگری های دنیایی داشتن این یه راهکار در کلمات امیرالمومنین باز داریم وکفنا طول العمل خدایا یه کاری کن که من به طول عمل نیفتم عمل با حمزه حارزه های بلند رو دنبال نکنم دعا کردم یکی از خیلی مهم طلب صدق عمله دنبال اخلاص باشه آدم داره در عبارات امام صادق علیه السلام و قصر به صدق عمل. خدای این طول عمل رو و این آرزه های بلند که و گردن من میشه و من قفلت میگیردم اینها رو تو خودت به صدق عمل و اخلاص کوتاه بگردن قصر انا الامل. صدق عمل صدق عمل یکی از واجه که به جای کلمه اخلاص ازش استفاده میشه دوبومی چیزی که ما رو از آراجهای بلند بعد دور میکنه رفتن به قبرستان هست یاد مرک یاد مرک یکی از راهکارهایی که انسان رو از قفلت بیرون میاره از طول عمل و آرزوهای بده بلند بیرون میاره